این شروع بشرا جمیعا و انترو اغلال السلام علیکم و الله و برکاته شنانده های گرامی ببخش دری برنامه رادیو صدای خلافت خوش آمدید حالا توجه شما را جلب داریم به داشته های امشب اتفو احلا نشید اتفو احلا نشید شنوندگان عزیز رادیو صدای خلافت نخست از همه آغازی دوباره نشرات رادیویی را تبریک می‌گوییم رادیو صدای خلافت پس از توقف کتا مدت با فضل الله تبارک تعالی دوباره به فعالیت آغاز کرد این بار ما تلاش کردیم تا برنامه های مختلفی را آماده سازیم و این برنامه ها شامل گل‌های خراسان منهج تا منهج تاغوت شناسی در جوی حق و غیره بوده و در روزهای مختلف هفته از طریق موج 90 FM پخش می شوند اما حال توجه شما را به خبرها جلب می داریم لحظات خبری شورای خلافت گزارش های جانبه از فعالیت ها و پیشروی های دولت اسلامی در تمام جهان لحظات خبری سری خلافت شما را از حقایق و معلومات تازه و دقیق با خبر می سازد و از تبلغات دروغین رسانه های غربی پرده برمی دارد. لحظات خبری صدای خلافت <تصفيق> شنونده های مومن رادیو صدای خلافت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته توجه نمایید به لحظات خبری رادیو صدای خلافت منطقه نره یوبو در دیبالا از وجود ملیشه های پاکستان پاکسازی شد روز گذشته ارتش خلافت اسلامی برای مقررات ملیشه پاکستانی عملیات تهاجمی انجام دادند که در نتیجه به فضل و احسان الله تعالی منطقه نره در ولسوالی دیبالا به تصرف خلافت اسلامی درآمد و همچنان در این درگیری چهار تن از آنها کشته شدند و چار میل کلاشینکوف دو میل راکت و چند مخابره دستی نیز غنیمت کردید در همین حال چند قبل مجاهدین خلافت اسلامی بالای خطوط همین ها در منطقه کرکنه و رسوالی اچین نیز چنین حمله را راه نموده بودند که در آن به شمول مقامات بلند رتبه 36 تن کشته و تعداد هم زخم برداشتند همچنان همشان از ها به شمول قماندان قتئی که کاروان نام داشت دستگیر شدند غنایم نیز در این غزوه به دست آمده در همین حال یک حمله تهاجمی نیروهای دشمن که بالای خطوط مجاهدین در مناطق شدل عدل خیل و دسرک راه اندازی شده بود با شکست بزرگ روبرو شد که اجساد زیاد از دشمن در صحنه جنگ باقی ماند یک خبر دیگر از کوت رساند که چند پیش حمله تهاجمی دیگر نیروهای اطلاف که با کمک حملات هوایی جت بی‌پیلوت و چرخبال‌ها صورت گرفته بود نیز به شکست مواجه شد. این حمله در حال صورت گرفت که نیروهای مرتد افغانستان با همکاری ملیشه های محلی با غرور و تکبر زیاد به هدف ایجاد پُسته وارد منطقه شده بودند. اما الحمدلله در این حمله چنان ضربه سخت و سنگین را راه مجاهدین خلافت اسلامی متقبل شدند که بیش از چل تن از آنها کشته و شمار هم زخم به جا گذاشت نیروهای دشمن پس از شکست دست به تجاوز و ظلم زدند و مناطق مسکونی را زیر آتشبار توبخانه قرار دادند که در نتیجه به مردم محل تلفات مالی وارد گردید این بود تحولات ولایت خراسان و حالا توجه نماید به خبرهای ولایت دیگر خلافت اسلامی لحظات خبری سلائی خلافت, سلائی خلافت.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 نیروهای خلافت اسلامی در سلسله حملاتشان دو موتر نظامی ارتش سوریه را در حال غنیمت گرفتن که صلاح سقیله در آنها نسب بود در اثر درگیری ها با مرتدین در منطقه الکرمه در سمت شمال شرقی شریف لوجا بیش از 36 تن از اساکری راقی و عملشه ها کشته شدند این درگیری در حالی رخ داد که نیروها خواهانی رخ نکردند در دو منطقه تحت تصرف خلافت اسلامی شدند آژانس اطلاعاتی عمق میگوید که چند روز قبل سربازان خلافت اسلامی در جنوب کمپ در ولایت دمشق پیشروی کردند که در این پیشروی مناطق مراق و پانزه سرک را هم به طور کامل به مددی اللہ تعالی فتح نمودند در منطقه ار ریزه در شمالی ولایت دیالات توسط حملات سربازان خلافت اسلامی هشتن از اساکیر راقی کشته شده و دو موتر همروشان هم از بین رفته است آژانس خبری اماق میوید که در اطراف کرکوک در نزدیکی شهر از تیاره های جنگی آمریکا بالای موتر مردم عام بمبارد کرده که در این عملیات دودن تن شهید و ده تن دیگر زخم برداشتند. در شمال شهری خانسره ولایت حلب نیروهای بشار که میخواستند توسط یک تانگی تی هفتاد و دو خلافت اسلامی را مورد عدف قرار دهند، در هنگامی فرار میلی تانک بالای خودشان انفجار کرد و سرنشینانشان کشته شدند. بنابر گزارش آژانس اطلاعاتی عمق، تازه‌ترین خبرها از ولایت حلب حاکی است که مجاهدین خلافت اسلامی در جریان فتوحاتشان هجده قریه و ساحت فراخی را در شهر خناصرفت کردند. این مناطق با نام‌های القلیعه اطشانه، اطوبه، عکیل، کویس، جبل العلا و غیره باشند همچنان در این جنگ غنایم زیادی هم دست آمد که سه ارادتانگ، پنج توپ فردیکا و موتر بی ام پی و بستونو هاوان، دو سد میزایل و غیره همچنان دو تناز اسکیریشیا اسیر شدند. قول تنا بی اسلام خراسان. آیا شما میخواهید که رادیو ساده خلافت را از من ببرید؟ برنامه فکری تعلیمی و تربیهی. بچه اکا دختارا که سطری میکنه خلاف اسلام است میتونی برمه بگی که کدام کدام دعاها یاد داری؟ دعاینن خوردن، دعای از خو کردن اینها اطفال شیران خلافتند اینها آینده درخشان خلافتند پیام برزویی است که به خلافت اسلامی و از گناهان تو بله، بله، اینها گلهای خراسانند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 دلگفته های اطفال خراسان دوشنبه شبها از رادیو صدای خلافت منهج تا منهج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 و نقطه را گذاشت که ما علیه کفار مرتدین مبارزه میکنیم دین الله را تطبیق میکنیم ولی عمل ثابت ساخت که تنها محض ادعا داشتن این برنامه را یک شمب شب ها و سه شمب شب ها از رادیو سوی خلافت فراموش نکنید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 از رادیو سبای خلافت نواد ما هرگز مرتدین و منافقین را نمی بخشیم هرگز کسانی را نمی بخشیم که در مقابل دولر اینا چیزی امریکایی ایمانشان را فروختند برای دشمنان هرگز این اجازه را نمی دیهیم که آنچه را که قایم کرده ایم دهند. دیهند یا آنچه را که بنا منهدم کنند از ما بشنوید آیا گمان می‌برید ما از بین میرویم؟ آیا خیال می کنید که ما نابود میشویم؟ نه والله تا قیام قیامت ماندگار خواهیم بود ماندگار خواهیم بود زیرا که به الله واحد خوزو نموده در حالی که دشمنان ما به آمریکا خوزو نموده اند.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 بابكر السلامه بلغه حضره المولى الامام وقف في اسلام دار على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوشحال هستم که ما عبدالرحمن روحانی در خدمت شما هستم در برنامه در جستجوی حق مسلمانان گرامی حالا وقتی آن رسیده که در جستجوی حق شویم و تحقیق کنیم بیاین که از زبان یکی از برادران مجاهد بشنویم که چیگونه به حق راه پیدا کرده لن نر هذا ولا ذاكا وذكا برأينا دولة الحاق هناك يا أبا بكر الحسيني فهكا مدة الأيدي تبايعك السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته برضه ما احترم شما خده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الإنسان خليفة في الأرض والصلاة والسلام على سيد الذي قام دولة الخلافة وعلى آله وأصحابه وإتباعه الذين أقاموا لإقامة الدولة الخلافة ويريدون إقامة الدولة الخلافة على منهاج النبوة إن شاء الله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا وجعل لنا من لدنك نصيرا أما بعد اسم ما اکرامس از ولایت پنشیر الان در طال اسلام قرار دارم ما اینجا زندگی ای می بسیار روحم آرام است و فکرم آرام است و احساس خیلی خوشی می و همچنان در خدمت مجاهدین قرار دارم جزاک الله خیر برادر پنشیر خو ماشاالله ایجا الحمدلله و دیگه جوانم ماشاالله گرو گرو روان الحمدلله. خب برادر شما تحصیل کردین؟ بلی من مواصل بودم در پنتون کابل دیپارتل سان عربی و سال آخیرم بود دیگه دیدم که اونجا وقتی که آگاه شدم فهمیدم که اونجا حاکمت نظام کفری و نظام سیکولوری و نظام دموکراسی میکرسی حاکم است و زندگی که من زندگی دارم چون الحمدلله ما بعضی معلومات کسب کردم فهمیدم که ما یک زندگی از زندگی ذلت آمیز از و خودم شخصا قبلا بسیار احساس ذلت کردم بسیار چون الحمدلله باز ما امیر رادیو خلافت اسلامی که فعال شد و از طریق اوجا خونه می گرفت از طریق امترنت باز ما تلاش کردم ای را پیدا کردم رادیو خلافت اسلامی را که گرفتم خیلی حقایق بود که من نمی فهمیدم برم معلوم شد بعد از این اقدام کردم که از تحت نظام کفری با تحت نظام اسلام بیایم و از زندگی کردن زیر نظام کفری آمدم زندگی ما در نظام اسلامی، حاکمت خلافت اسلامی حاکمت نظام الله ادامه دادم بارک الله حفیق خب برادر شما گفتین که از طریق رادیو صدای خلافت بعضی سخنای علما را البته شنیدین یا بعضی برنامه های دعوتی را شنیدین و باز تصمیم گرفتن که بین به با طرف خلافت اسلامی. قبلا کدام شبهات بر شما اجاد شده بود؟ آیا از طریق رسانه های کفری بود و یا از طریق پوانتونا بود چه قسم بودم ای؟ چون این رسانه آه، آه، کاملا افکار کفری را نشر می یک کمی متاثر شده بودم نبود چون نیست امیت یک رسانه امیت یک رادیو نیست هست که با واقعا حقایق پیدا کنه. چون به خاطر یک رادیوی اسلامی فعال شد و حقایق بیان کرد برای امت اسلام ما به اندکترین یک رادیو اوجا متاثر شدم حقایق در کلام راه روشن شد و حرکت کردم طرف خلافت اسلامی و اونجا خیلی امیر ها کار میکنن حتی افکار کفری افکار نشناریسم سکولاریرا امر در فکر جوان ها مراکز دارن که جوان ها را به مسیحیت دعوت میکنن و خیلی مشکلات وجود داره و الحمدلله از الله می که این فساد این فعالیت های کفری ای نظام های کفری از روی زمین بار دیگر مثل که کسرا و قیصر در زلیل شد این قسم باز زلیل شد ما مطمئن امومت همو هستیم امون خامیانش همه زلیل میشن انشاءالله باز یک بار دیگر امومت اسلام در تحصر و سر جهان از با عزت میشن و پس همو عزت از دست رفته خدا پس کسب میکنن جزاک الله خیر. خب برادر محترم شما بر امی نظام های کفری ویا بر امی که تحت امی نظام های کفری زندگی میکنن بر مردم تبلیغات غلط میکنن روزانه حتی در خودبه های نماز جمعه هم به نام اسلام اما قوانین دیموکراسی را یا سیکولار را بر مردم خوب جلوه تن بر ازینا شما چی دارین؟ پیام دارین؟ پیانم خاصم با علمای سوی که امون نظام کفری که امروز بالایشان حاکم است او را مشوریت میتن و تحت از اون نظام زندگی میکنن و روزانه هزاران جوانی که از دین آگاه نیستن را تشویق میکنن با اردو و امنیت و پلیس و پلیس ملی و اردوی ملی و غیره تنظیمات میرن جا میشن یا ای که اینها حق پت میکنن و الله در روز قیامت و این عید الله را هم بدانن که الله میگه آ خانت الله و ملایکه الله و تمام مردم روی زمین باربالایش است و در روز آخرت در دنیا خار ذلیل و در روز آخرت به عذاب عظیم دچار هستند از الله بترسند یا توبه کنن از کفر و شرک و که کردن حق دست بردارند و حقایق بیان کنن تا نظام الله حاکم شود و گفتن حقایق از طرف شما علما رول آمده و, و بشار محصر در جامعه از الله بترسی حق بگوی ورن شیران خلافت اسلامی با شمشیرهای بران خانان خواهد رسیدن و گردنهای شما را از سر از تنتان خواهد جدا کردن و همچنان چند یک ماه یک نیم ماه پیش بود که یک از طرف یک عالم سو و جاهل بدبخت که حق همیشه پت کدست پت می کنه و همیشه مجاهدین و همیشه حامیان اسلام بد و رد گفته از طرف اون عالم مرتد یک برنامه ریزی شده بود برنامه مجمع تنسیقی له افغانستان و این برنامه زمان هم حضور داشتن اموجا که در این برنامه تمام علما امو کثیفترین علما که حق مت میکردن حتی مشایخ حدیثا شیخ, شیخ دوره دورهای تفسیر میدادن حتی خیلی کثا بودن خیلی از علما امو موجود بود حتی از تمام ولایت افغانستان اموجا آمده بودند موجود بودند و افکار رو مطرح کردن اهداف رو کردن و و تا يرا گفتن اوجا بر جامعه بر مردم حتى تلویزیونا رسانه ها هم اومده بود که یک جاهل یک انسانی که یک کمی هم از اسلام آگاه باشه او ت یک گپار نمیزنه و گورا میدانستن بر خود راه حل بدانه ای علما سو که این مجلسایی که, که مصر چرسیو و پودریو شما میگرده هر جای این راه حل نیست و راه حل ای است که حق مستقیم بیان کو قیام کو کمر تبسته کو برای به خاطر رضای الله برای به خاطر نصرت دینی الله برای به خاطر نصرت مجاهدین امروز در این جما جو اومدم قرار داشتم به الله قسم است مجاهدین در راه الله مرز می, می جنگن وای بر شما علمای سو وای بر شما علمایی که امروز با هزار دلاری در فورانرها محترهای در کابل چکر میزنن و دگه مناطق چکر میزنن در روز قیامت از همیش نعمت الله از پرسان میکنه از الله الا رب نصرت کنه، مجهادین نصرت کنه، الله در روز خمار سخت استان پرسان میکنه، ازیس رواته تان، ازیس سهادت تان. آیه آل آیه قرآن نشمندیک الله میفرماید، و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله و من الرجال والنساء والبلدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا چی چیز است برای شما ای علما ای انسان ها در روی زمین چی چیز مانع شما شده است که نمی روید در روی الله نمی جنگید و خاطر حمایت از مستدفان ضعیفان کودکان پیران جوانان چرا نمیره چرا خاطر حاکمت نظام الله کار نمی کنه چرا خارج نمیشه جهاد نمی کنه چرا حقایق بیان نمی کنه آیا از الله نمی ترسی شما و ای را هم بدانید این یعمت ها این فرصد هایی که امروز در دسترستان قرار داره وقت داره باز توبه کنه به الله رجا کنه الله قبول کنید توبه است با الله توبه کنه الله توبه تانه قبول میکنه که امروز در تمام جهان کفار حاکم از نظام های کفری حاکم است تا باشد که اوممت اسلام عزیز زلت به یک عزت تبدیل شود همه شما علما بدانه که هر صحبت در بالا جامعه خیلی موثر است حقایق بیان کنید تا عمت اسلام بیدار شود آیا نمیدانید آیا خبر ندارید که امروز در تمام زندان های کفری گوانتانامو و و زندان بگرام و پل چرخی و دگر کشورها زندان های امریکایی چقدر عمت اسلام با چه اندازه خواهرای موج بهت میشه چقدر مسلمانان مجاهدین و مبارزین حق ده اونجا هستن به عزت هستن چقدر ظلم در بالایشان انجام داده میشه آیا از این خبر نداره از الله بترسه آیا نشینید گونها از اونجا صدا میکنن کجا هست ای پیروان عمر کجا هست ای پیروان عثمان کجا ای پیروان علی کجا هست ای پیروان ابوبکر صدیق کجا هست یک مشکلات نجات بده کجا هست یک مرد عزیز ظلم و بدبختی و از این شکنجه های کفار نجات بده آیا شما صدای خواهران و برادران ما را نمیشنوی؟ از الله بترسی؟ به الله رجوع کنی؟ کمرتان بسته کنی؟ قیام کنی؟ والله که امروز والله وقتش است که امروز باید ما حقایق بیان کنیم امروز فرصت است حقایق بیان کنیم امت بیدار بسازه تا باشد ما مسلمان باز هم از خود یک نظام اسلام یک نظام واحد یک حکوم خلافت اسلامی واحد که در تمام جهان بالای تمام نظام های کفری بالای تمام طاغوتان و فراعینه های مرتد و کفری و ملعون باز هم حاکم شو عزت مادمی است که حقایق بیان کنیم از الله بترسیم نی از نظام های طاغوتی از شکنجه به خاطر ازی که ما مبادا ما که شکنجه شویم مبادا که عذاب شویم مبادا که در زندان بیفتیم به یه خاطر از حق نگذره حق بیان بکنه حق حق بیان کنه باطل باطل والله یاقدر امتی که امروز ده غفلت قرار دانن در دا روز قیامت الله از شما پرسان میکنه ای او مجموعه تنسیقی لعلامه افغانستان دوژ شما چه بیان کرده؟ تمام حرفهایتان امی بود نتیجهش امی بود که مااضر امین نظام خوش هستیم از ردابل کفر کفران رداب, رداب کفر خودش کفر است هر رضایت تان نشان دادی از نظام کفری نظام کفری تایید کرده اهداف هداف پوچ تان ویجا مطرح کرده و گمراه ساخته مردم ملت گمراه ساخته از, از الله بترسه او افغانستان مردم ملت افغانستان سی شهید داد از خونهش رو هداابتترسه و شما که پیام میفرسته به مشاهدین او آلمای سو او و مزدوران او، بنده های نظام های کفری بشنوی شما که شما از منابر پیام میفرسته برای مجاهدین و خلافات اسلامی که و هرگاه ما که سال براتان پیش کنیم سالحه نپذیری باز آیته میخانی و این فتان من المؤمنین اقتتلو فاسلحو بینهما هما فا این بغت احداهما هما التي قاتلو آیات او عالم چرا آیت قرآن تحریف می کنی کلام است؟ از الله بترس ای آیت دا ایجا مدرح نمیشه او عالم از الله بترس او او جاهل او نادن او نادان او عالمی که دین است از دستی که دین بیان نکدی حق بیان نکردی. حتی حقایقی که یاد داری و یادت رفت است از الله بترس ای آیت به ای ارتباط نداره اگر مجاهدین خلافت اسلامی اگر صلح کنند به خاطر چه جنگ می کنند به چه جهاد می کنند به خاطر چه میرزمان اهداف مجاهدین خلافت اسلامی حاکمیت نظام الله حاکمیت ح... یک حکومت و یک دولت اسلامی در تمام تمام جهان بالای تمام امت اسلام و بالای تمام انسان های روی زمین و حاکمت نظام الله است او عالم اهداف ما این که ما جنگ جنگ میکنه ما قدرت بگیره ما چوکي بگیریم اهداف ما حاکمیت نظام الله است اهداف ما صلح با نظام های کفرین است اهداف ما صلح با مرتدین ملعونین و هم شما علمای سو و شما علماء غافل و متاثر از نظام های کفرین است اهداف ما حاکمیت نظام الله است و علیکم و رحمت الله و برکات جزاك الله خیر لن نرى هذا ولا ذاك وذاك برئينا الحق هناك خب گرامی چینی که کی برادری ما برای علما و عام مردم چی گفتنی ها داشت الله کند که خسته نشده باشید تا برنامهای آینده که باز هم در خدمت شما قرار میگیریم شما را به الله عزوجل میسپاریم و والسلام علیکم و رحمت الله و برکتو. تبايعك إماماً بلغوا منا أبو بكر السلاماً بلغوه حضرة المولى الإماماً ورفعوا رايتنا في كل دار دولة الإسلام أمن وسلاماً دستور ما قرآن ما لشکر ایمان ناصر بما رحمن دولتنا منصورا ناصر بما رحمن دولتنا منصورا ما پیروی احمد ما دعی وحدت بر مؤمن رحمت دولتنا منصورا بر مؤمن رحمت دولت منسورا جاری شریعت را قائم خلافت را خاهم کرد و الله دولت نمنصورا خاهم كرد و الله دولت موج موجی خروشانیم فرزند تو شمشير شمشیر بررانیم دولت منسورا شمشیر برانیم دولتنا منصورا مالم فدا جانم خاک خراسانم از بهر ایمانم دولة من ایمانم با نصرتی الله پیروزی جند الله الله دولة من الله دولة من هر ملک ما ملک خدائی ما وعدنا مود برما ما دولت نما نمود برما مود بر انگلیس دولت پاکستان امریکا و ایران یا رب و ایران دولت نما منصورہ یا و ایران دولت نما قانون ما نہ شرقی و غربي بیعت بابغدادی دولت منصورا منصورہ بیعت بابغدادی دولت ما بو بکر یا کرار اے قائد احرار دشمن جو خار دولت منصورا دشمن جو دست خار دولتنا ما یارب خلافت خود از جانو دل محبوب عمر شوات ممدود دولتنا منصورا عمر شوات ممدود دولتنا منصورا عمر شوات ممدود دولتنا منصورا طاغوت شيناسي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقا لا انفصام لها والله سميع عليم الله وایک تاریخ مشهور است که تاغوت ورا عبادت کرده می شود دیگران او را عبادت میکنند و او از عبادت دیگران راضی باشد زیرا تاغوت میگند تاغوت حکومت تاغوت عبادت تاغوت اطاعت و متابعت و کسی کزیک دعوا میکند که, دعو می که بالله با تعالی ما ایمان داریم بتعید ایمان داریم لیکن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 مسلمانان گرامی، این بود داشته های برنامه امشب ما. تا فردا بعد از نماز مغرب که باز هم با برنامه های پشتو در خدمت شما قرار می گیریم، شما را به الله عزیز و جل می سپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و براکاتو.